اقوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فالله خیرون حافظا و هو و ولا هول ولا قوته الا بالله الالی العزیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیه کل ابن الحسن که علیه و علی في و في كل اتوس کنه و زکتا و اوات متع ها فیها تبیقا تسلی دل آقا و ابن الحسن العسكري جان الله تعالی فرج و شریف و تعجیل در فرج حضرت ایشون به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد اللهم تسلی دل آقا مولا و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاد طیبین و طاهرینشون به نیابت از حجت ابن حسن صلوات خالص فرمشت. الله و محمد و آله محمد قد سرژان را مقام از همه دوستان امیرالمؤمنین هر که تو این عالم آقامون امیران دوست دوستانه انشاءالله از ابتلاعات آخر و زمان نجات پیدا کنه هر حاجتی داره انشاءالله برآورده بشه محضر بی بی دعال هم حضرت زینب کبرا سلام الله علیه ها سلبات خدفه الحمدلله خدا رو شاکریم مننت سرمون گذاشتن شب دیگه اجازه دادن دور هم جمع بشیم گرد فضایل و مناقب آقا, آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و بیبی بی دو عالم که بارها گفتیم به فرموده آقا رسول الله بالاتر از این عمل تو عالم وجود نداره که آقا رسول الله فرمودند سید اعمال افضل اعمال محبت آقا امیرالمومنین و اولاد طیبین و طاهرینشون اما در این چهار شبی که مصدده و درست پس بینم این رو مطلب رو با هم باز میکنیم که یقینا تا وقتی ما هدف خیلقت رو متوجه نشیم علت اومدن تو این دنیا مون رو متوجه نشیم هر چقدر هم کار خوب انجام بدیم باز مرزی رضای خالقمون رب عربابمون عملی انجام ندادی یعنی چی <تصفيق> یک کسی برای شما یک کاری داره میگه این کارو واسه انجام بده حالا تو برو هی مثلا هر کاری خوی بلدی نسبت بهش انجام بده بیا من تشنه‌م من آب میخوام هی برو بهش پول بده بیا پول دارم ازای خوب واسه‌اش بخر براش تفریه وش گردش خلاصش خوش بگذره هر چی خوبی از انجام بده تشنه نشه آب می‌خواد استو و راضیش نمی‌کنه حالا این مثال دور از شان این قصه است اما باید ببینیم ما واسه چی خدا ما رو وارد این دنیا کرده چون روایاتی که ما تو این جلسه هم تحت این پرچمو توضیح دادیم این روایات هم همه پابنای اینه که ما در عالم قبلم تو بهشت زندگی میکردیم یعنی موهبان امیرالمومنین توی این دنیا که محب امیر المؤمنین نشدن که تو همه ی عوالم قبل محب امیر المؤمنین بودن از روز ازل محب امیر المؤمنین شدن به لطفه عزت زهرا سلام الله علیه و روایات ما قائل با اینه که ما هفت عالم داریم و در عالم شیشون ما داریم زندگی میکنیم تو پنج عالم محب امیر المؤمنین بودیم و خوب زندگی میکردیم تو جهنم نبودیم تو سختی نبودیم پس ما رو باسیه چی خدا آورد توی این دنیا که خود خدا تو قرآن میگه این دنیا سختترین عالم تو عوالمه که تا کردین تیگردین و عوالمه بعدی حتی یعنی مشقت این دنیا چون داره امتحانه داره ابتلاهاته لازم بدترین اتفاقات هم حتی برای اهل بیت تو همین دنیا میفته و در عوالمه ای احل رو مسیباتو خود خودمام حالا شما جوون شاید خیلی به موسد با مشکلات ابتلاعات دست و نرم نکرده و شاید بعضیتان شاید اتفاق و سطنه افتاده باشه اما هرچه جلوتر میریید هرچ از سند بلوغ بیشتر میگذره یعنی آماده تر میشید خدای ابتلاعات رو زیاد میکنه و تو زندگی به نکن به این راحتی زندگی خواهید کرد و این اطلاعات هست خب چرا؟ چی خدا از ما میخواد؟ میبینید از اون طرف هر کسی واسه ما یه دینی تعریف کرده هر کسی عممون یه چیزی میگه خاله‌مون یه چیزی میگه عممون یه چیزی میگه بابام یه چیزی میگه روحانی مسجدمون یه چیز میگه تو تلویزیون یه آقا میاد صحبت میکنه، اما مثلا هرش یک میگه آقا نماز خیلی مهمه نماز بخونید فلان یکی میگه آقا روزه مثلا ما رمضان میشه میگه آقا روزه نمیدونید چیه فلان اینصاره بعد یکی میگه یکی میاد میگه آقا گناه ها اینجوریه فلان یکی میگه حج باید برید فلان احترام پدر مادر بذارید خب همه اینا خوبه خوبه که واجبات دین ماست. یعنی کسی که نماز نخونه در طور سریح احلویت گفتم اصلا شفاعتش هم نمی اینکه این بحث درش نیست اما از اون طرف هم ما داریم که وقتی که الان یه میلی یاردنی مسلمون داریم حتما فکر و حاملات تو مکه رفتن اگه خودتونم نرفتید چقدر تعریف بودن از نماز خوندناشون قرآن خوندناشون چقدر اهل قران انجقل احد نمازات ولی خوب از اون طرف می‌بینی که به شدت اهل بیت ما با اینا برخورد می‌کنن به شدت روایت توندی داریم که آقای اینا اصلا معجور نیستن مثل یه روایت معروفه که تو کتاب الفردوس اهل سنت هم هست که اصلا کسی که اینا رو خوندم بارها هزار سال عمر کنه عمر از نوح رو بکنه خداش امهراجو پیغمبر میگه دیگه کسی که عمر نوح رو بکنه هر شب شب زنده‌دار باشه نماز شب بخونه که قرام که نماز شبرکی بخونه مقام محمود میدم بشه مقام پیغمبر میدم بشه هر روز روزه باشه که روزه خدا می که روزه خود منم هر سال بره حج پای پیاده اونم نه با هواپیما و خوتل و موضوع اینا اینا نه پای پیاده بره حج سال آخرم خونش مظلوم بین صفحه و مروه ریخته بشه دنبال شهید بشه. قرام جهان را به هم یوزاقون شهید. خون قطره اولین قطر خون شهید خودام یه همه گناهش میبخشه میگه این آدم با همچین خصوصیاتی بوی و درک نمیکنه اگر محبت امیرالمؤمنین نداشته باشه. از این بالاترش امام صادق الله عزیزت تو احتجاج این سندش با این سندش رو میگیم که از این بحث بکنن با دوستانشون با سند بحث بکنن نگید یکی گفت. اونم برمیان که یکی گفت درست در نمیاد تو احتجاج شیخ صدیق اون از سیدی هاش اینترنت هم سیچ کنید میاد میتونید راحت صفحه شو این پیدا کنید نشونه اون طرف بدید یا هم ساده میفرماید اگه کسی خدایی که خلق کنه بعد سواب 124 هزار رو هر یه پیغمبر کارا کرده یکی خیوسف صدیقه چقدر زحمت کشیده چقدر هدایت کرده روایت میگه یه نفر رو هدایت بکنی به اندازه که تا زمانی که خورشید به زمین میتایی بر تو حسنه می نویسن خیلی روایت عجیب رو هدایتی یه نفر داریم هر پیغمبر چقدر هدایت کرده بعد 124 هزار پیغمبر که هست ابراهیم یکیشونه الله. حضرت نوح شیخ الانبیا یکیشونه هست موسا یکیشونه یه سوا به 124 هزار پیغمه رو خدا یکی خلق رو روی این سوا همه،, همه کار رو یه نفر کرده 124 هزار پیغمه نام سوابی اگه این محبت هم میرد رو درشته باشه خدا نمیذاره بوی بهش رو درک کنه ببین یعنی یه حساب کتابی تو این عالم هست یه چیزی خدا از ما میخواد که ما رو فرستاده تو این دنیا و حتی این رو ما نفهمیم حالا هر چقدر عمل خوب انجام بده بیشت از 124 هزار پیغمان میتونی کاری انجام بدی نمیتونی که چی کار باید بکنیم ببینید همه دق ذهن ما باید این باشه تو این مدتی که اندازه یه چشم به هم زدن زنده ایم قرام میگه من نمیم که قرآن میگه با طرف بنده رو میخواییم چرا تو این دنیا بودیم یه اندازه چشم به هم زدن اصلا باید میگه که شما انگار از خواب بیدار میشید از, خختی از این دنیا در این حد زندگی دیتی از خواب پری می پریم یه خواب می میگه تموم شد زندگی این دنیا رو روایت هم تمثیل به خواب بکنه. از این خوابی هویی رو میپریم حالا هم که دیگه کسی به وصنعت نداده که 70 80 سال زنده باشیم که علام که مینی کسی چه سال ببینه به جایزه میدن همه زیر سی سال چه سال دیدیم چه خبره پس خیلی وقتی نداریم چیکار باید بکنیم این فرصت چیه امیرالمومنینتون امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید کسی که نفهمه عالم عوامله قبل کجا بوده عوالمه بعد کجا میخواد بره و نفهمه واسه چی اومده تو این دنیا سعادتمند نمیشه بفهمه آ کجا بوده چیکام کرده بعد این حادث بشه بفهمه کجا میخواد بره علت او تو این دنیا چی بوده حالا ما تو این چهار شب نمیتونیم تک تک اوالیم قبل بحث کنیم. یه مدتش هم بحث کردیم راجع به بحث عالم بزر و عالم علست و عهدی که اونجا گذروندیم و اینا رو گفتیم تو این آیات که ما روز اول خلقت اومدیم خدا ما رو خلق کرد و اونا که بارها گفتیم. و ما یه عهد خدا از ما گرفتن راجع به امیرالمؤمنین بود و از این عهد رو محکمتر انجام داد پیغمبر اولو العزم شد، پیغمبر مرسل شد، پیغمبر شد. نمی‌تونیم این حرف رو بزنیم که غیر از پیغمبران اولور اول از اون پیغمبران مرسل که شیعان مقامشون پایین تر از پیغمبران خدا چون روایت میگه علمای آخر زمان مقامشون از پیغمبران ونیسترائیل بالاتره علمای آخر و زمان یعنی این یکی هرکی اما به داشته باشه و هرکی محاسنی داشته باشه و این میشه عالم و فقه خونده باشه عالم در تعریف علم روایات ما علم دانستن فضائل امیر المومنی. پره هست هر کس فضایل امیر این رو بیشتر بدانه دود عالم است آگاه باشه پس هر کی بدون موکر بقال باشه موکر کارگر ساده باشه اما عالمه بعد چون آخر و زمان کار سخت میشه علت این یعنی آخر و زمان یه روایت عجیبی هست از امام ام... صادق علیه سامن گودم از احلویته حالا از که میدونن بندن اشاره کنند میفرمایند شیعیان ما در بحث اجر در بحث صبر اجرشون از ما بالاتره خیلی حرفا امام معصوم میگه تو بحث صبر اجرشون از ما بالاتر چون ما اهل بیت و مصبر میکنیم اونها فقط ما رو دیدهاند فقط به حرف ما عمل میکنند نه میدارن چه انتظاری دارن و صبر میکنند این در بخشی از جاها اهل بیت امتیازهای خاصی بهش دارن پیغمبر خدا سلمان نشسته مقداد نشسته ابوذر نشسته کسانی که افتخار ما اینه که خاک پاشون باشیم اینا پیغمبر میگه برادران من بعد میگن آقا ما مگه نیستی میفهمن نه شما یاران منید انصار منید برادران من دوستان امیر نه که در آخر زمان میان و ندیدن ما را ندیدن امیر المومنین و عاشق امیر شما هست در پیغمبر هر که اومد پیش پیغمبر گفت من میخوام با شما عقد و قوت بخونم پیغمبر فرمود علی برادر منه فقط بعد ببین یه نمرهی به شما ها میدن که به سلمان وقت نمیدن به شرطها و شروطها یعنی قدر خود تو باید بدونی. اینی که میگن اگه کسی منتظر مهدی فاطمه باشه که تو خیمه امام زمان داره در محضر امام زمان خدمت میکنه به امام زمان و کسی که یار امام زمان باشه تنها که جایی که اجازه دادن حیطه پرانتز شهدای کربلا رو باز کردن اونجاست که امام ساده همه هر کس یار امام زمان باشد جزو شهدای کربلا محسوب میشه خب یا چی با چی میدن اینا رو ببین همه حرف اینجاست دوستان امیرالمؤمنین به چه قیمتی اینا به شما درلغ میگیره آیا به قیمت نماز و روزه و اینهاست که جای اینا خیلی خاصه اما اینا یه شرطی داره ولی همه نماز میخونن اینی که نماز اول وقت یه همچین نورانیتی به آدم بیده نماز اول وقت وصل به نماز امام زمان ما رو اینا نداریم من با پیش این دارم این حرفا رو میزنم که شما آگاهید بر اینکه نماز نماز بالاترین جلوهی ولایت امیرال مومنینه من رو من با این آگاهی حرف دارم اینجوری حرف دارم اگه نه که برم از اول راجب نماز حرف زنم که شعن نماز چیه این امام باقر آخرین لحظه شهادتشون چش پاس کردن به پسرشون امام صادق فرموندن که الله الله به نماز وای کی نکس نماز نخونه ما شفاعتش نمی نمیکنیم چرا؟ چون نماز تبعیت خاص از امیرالمومنینه چون امیرالمومنی فرمان و سالات ما آیه قرآن داریم یا که نعبد و یاک که فقط از تو استعانت میجوی فقط از تو یاری میجویه اما یه جدی یه قرآن چی میگه نستعیف به صبر و سالات پیغمبر میگه صبر منم سالات علی یعنی این نماز درسته حالا همه میخوانند اما فهم روش ندارن این نماز جلوه ولایت امیرات مومنی ما اینه میدونیم این رو قبول داریم همه همه اون اونم هم رضایت امیرات مومنی با نماز با روزه با همه این فروع دین اما اینا فرو دین یه اصلی وجود داره که تحقق اون اصل این و جلوه میده این فروع رو به حقیقت میرسونه اون اصل چیه؟ این اصل تو بفهمیم زندگی باید. برای چی اومدیم تو این دنیا همه اصل اینه ما را خدا واسه چه تو این دنیا بعدم خودش تو قرآن میفرواید دلم به حالتون سوخ یه خورده تزینش کردم واسه تون که خیلی بیچاره نشید یه گلی بلبل یه دریایی رود خونه یه خونه یه زنی بچه یه س... حفریاتی واسهتون فراهم کردم که حتی ابلیس هم همینو رو مستمسی قرار میده ها خود ابلیس هم میگه که خود همین دنیای مختصری که واسهشون درست کردین خیلی حالشون گرفتنش از عالم دیگه میان و من همینو رو تو ذهن اینا قشنگ جلو میذارم اینا مشغول بشن اما پس در اینجا واسه چی خدا ما رو انداخت اینجا چه وزیفه ای داریم از کجا شروع کنی از که همه همه علاخوندین شروع کنیم حدیث شریف کسا میگه ای که من هنوز ماها نبودی داد خدا شروع کرد داوود داد بیداد. ای که من همه اینا که می‌بینی خلق کردم خوندید دیگه کوه و دریا و عرش و فرش و اینا رو همه رو خلق کردم برای این پنج تا یعنی چی یعنی شما سر کارید همه اینا تو فعلی وجود خاک پای قنبر امیرالمومنین همه این کوه و دریا بود. اینا نیست که طرف گفت. آقا ما اشرف مخلوقاتی ما فلان ما خلیفۃ اللهی این دریغریاییه که بعضیا میگن. ما خلیفۃ اللهی من ما خلیفۃ الله. کی گفت؟ ما مخلوقاتی. به شرطی بله این آدم اشرف مخلوقات میشه تا وقتی آب توی لیوانه، آب لیوانه. آقا من دریا بودم بودی که بودی حالا تو لیوانی. اسم من دریاست نه خیر اسم تو آب تو لیوانه بله این آب برگرده تو دریا دریاست برگرده تو دامن امیر المومنین بیریزه تو دریای حقیقت امیر المومنین بله بی قیمته بی یه جای آدم معمولی که خدا تو قرآن میگه بابا تو یه نطفه نجس بودی خدا باز موقعات که عصبانی میشه دست بنداش خیلی پرگی میکنم یه بابا تو یه نطفه نجس بودی کسی نگاهات نمی‌کنه من اینجوری کردم آیه قرآن دیگه این آدم به یه جایی میرسه حجت ابن الحسن خلیفه الله العظم خدا ولی الله بر میگرده میگه می به ابی ان به کی به شهدای کربلا به یه غلام سیا برمیگرده حجت ابن الحسن میگه به عوی ان تو نای مقدس است چرا چون مستقرق تو دریای امام حسین شد فدای امام حسین میشه چطوری آدم باید به اونجا برسه همه حرف اینجاست <تصفح> بجا بودیم حدیث کسان یا آقا همه اینا رو واسه اینا خلق کردم اینو بدونید بعد حالا ایام فاطمی است، حدیث لولاک پیغمبر تو رو به خاطر علی خلق کردم یا رسول الله یا امیر هر دوی شما رو به خاطر فاطمه خلق کرده. دبین همه چه تو آلم تو فعیلی وجود حضرت زهر الله پارنگی تو آلم اگه خدا از کسی به خاطر رضایت داشته باشه به پیغمبر میگه پیغمبر من رضای من در گروی رضای فاطمه است نمیگه اگر فاطمه راضی شد من هم راضی میشم ها. میگه اگه من راضی بشم فاطمه راضی میشه نه میگه هر کی اون راضی بشه من راضیم برعکسشو مثال نمیزنه رضای فاطمه همه عالم بعد خدا تازه میگه همه رو واسه اینا خلق کردم تو حدیث کسا بعد جبرئیل میگه خب خدا کین اینا میگه هم فاطمه و ابو و بعلها و منو فاطمه همه چی از زهر و سلام همه چی توی گروه رضای عزد و سلام الله همه چی تو عالم صدقه وجود لبخند عزد زهر و سلام الله بخنده عالم بخنده قذبناک بشه عالم قذبناک بشه بعد شماها رو خلق کردن از چی خلقوم الفاظل دینتنا از تینت یعنی چی؟ یعنی شما بخشی از وجود اهل بیتید. یعنی وقتی خدا میگه خلق کردم اینا رو برای این 5 تا، شما جزی از این 5 هستید. کیا شیعیانم. بعد شما شیعه می... آقا نه آقا نگو شیعه مقام خیلی بالایی داره. خود اهل بیت فرمودن شیعتنا خلق قوم من بعد یه شرط خواستش گذاشتن گفتن مشخصشون میدونی چیه شرط نیست گفتن آقا یه مشخصه دارن میخوایی بهش سینداری نگاه شون بکن اینجوری یهزنونه به حزننا یهفرهونه به فرهن تو شادی ما شادن. تو ققم ما یعنی معلوم میشه دیگه تو اگه از منی تو ناراحتی من ناراحتی تو خوشی منم خوشی ون من خوشم میاد تو هم خوشت میاد اون که من ناراحت میشم تو هم ناراحتت میاد این مشخصه چون از منی دیگه مشخصه هست ویژگی خوب حالا آقا ما واسه چی اومدیم پس ما این چیکار بکنیم ما که از اهل بیت هستیم ما که خوبیم ما که جدا شده از اونها هستیم پس خدا ما رو واسه چی برد اینجا چرا ما رو جدا کرد ازن اهل بیت دیگه ما اهل بیتیم چرا جدامون کرد برای شما رو باورده تو این دانیا این سؤال اساسیه که باید پیدا بکنیم چند چند کسی هم ساده دستش نمی بنده دیگه چهار در رو سید قولنم دهت همون کنم دوانت فرد شد بحثای دانا بدیم ولی بدونید دوستان یه قیمتی ما ها داریم به یه شرط هایی که تو عالم تکه و یه وظایفی داریم که این وظایف به این نماز و روزه هایی که واجب است و خود دین است و مهم است جلوه میده اونها رو باید بفهمیم ویل محتلی. هر هرکی به یه زهمی میگه آقا به نظر من دیدی که الان به نظر من دین داری همینه دید دلت پاک باشه فلان و از این حرف نه آما یه داریم یه عهد داریم یه وزیفه داریم ناویدن انجام بشه حالا ایشالا عرض میکنیم اما ایام ایام فاطمی است. همون عالمی که خدا خلق کرد همون عشقی که خدا سر محبوبش کرد یعنی حضرت زهرا صلی الله همون لذتی که امیر محبوب خدا ولی الله آقا آقامو مولامو ولی نعمت مومنین اون شب اولی که از زهره سلام الله علیه ها بر خونه امیر شد صبح فرداش رسول الله پرسید یا علی چه خبر؟ امیران مومنی تا فرمود تا صبح من فاطمه رو نگاه میکردم فاطمه من را نگاه میکردم چه عشقوازی را چقدر دوست داشتم هم دیگر همون شب اول فاطمه فرمود علی جان نیومدم تو این دنیا فقط به خاطر تو فقط به خاطر تو اومدم علی پیغمبرم گفت گفت اگه علی نوود کفی برای حضرت زهره سلام الله علیه توی این عالم. زندگی خوبی داشت پیغمبر قبل شهادت و قبل از اینکه به شهادت برسته و علی و گفت علی جان جبریل یه سری خبر را واسه من میخوام بهت بگم آمادگی داشته باشی علی جان من شهید میشم امیرالمؤمنین سرش پایین انداخت شو کردم گریه کردن فرمودن صبر میکنم یا رسول الله علی جان مردم تنهات میذارن دورت خالی میکنن امیرالمؤمنین فرمودن صبر کنم یا رسول الله یا علی جان به توهین میکنن صبر کنم یا رسول الله علی جان جواب سلامتو نمیدن صبر میکنم یا رسول, بخاطر بخاطر رسول الله. به خاطر دین به خاطر شما سب میکنم یه هر آقا رسول اللہ شروع کردن گریه کردن <تصفح> علی جان جلوی چشمات فاطمه را حتی حرمت میکن <تصفح> امیر شروع کرد گریه کردن یا رسول الله. از خدا بخوا به هم سبد سب، سب، سب، سب، سب. اون شبایی که علی از خدا سب میخواست این شواس آی چه گزارش برام ایران چه گزارش برام ایران رفقا مثل دیشبی امیر المومدین روز رفت تو مسجد نشست و حل عبادت میکرد یهو حسن اینو دید بلند شد گفت نکنه فاطمه ما از دست دادم تا حسن گفتن بابا بودو فهمید که فاطمه شرم سریح روایت میگه عباد دور پای آقامون پیچید زمین این سخن ورده زبانها افتاد. <تصفيق> کی وایج میکرد ید اللهی که در خیبر رو میکنه ید اللهی که توی جنگ امر و زمین میزنه او که قدرتش قدرت ید اللهیه. او که عین الله الله دیدی آخر, آخر. الیاس پا افتاد. <تصفح> دویید آقا دوید تو خونه دید فاتمش اونجا خواهیده همینجور آروم آرومی میرفت جلو صدا میزن یا قرت عین رسول سیدت نسا همین با من حرف بزن من علیه کلمینی فاتمه من علیم خدا دید داره جان از بدن علی خارج میشه روح برگشت, رو برگشت, رو برگشت, رو برگشت چشمان ازت زهرا باز شد, باز شد دوباره این چشما به هم, هم, هم گره شروع کردن گریه کردن با, دیگه کردن با هم همدیگه صحبت, صحبت کردن علی جان بزا برم خسته شدم نمیتونم مسلومیت تو رو ببینم جان عالم به قربانه جان روایت میگه از از زهران عشقای امیلال رو پاک میکرد میمالید به صورتش میمالید به سینهش میمالید به بازوش امیلال مومنون چی داری میکنی فاطمه علی جانت بابام جنیدم اشک مظلوم شفاست <تصفيق> حیعت بیت زهرا سلام الله علیه b t -z -s. i r